آن مرد بی صدا خوش زده بود هر دو در آستانه در بی حرکت روبروی هم ایستاده و به چشمان یک دیگر خیره شده بودند چند لحظه که سپری شد ناگهان ولچانینوف ملاقات کننده خود را شناخت محسوس بود که در همان لحظه مرد ملاقات کننده هم فهمید که ولچانینوف کاملا او را شناخته است و این امر در نگاهش درخشید و به نظر آمد که همه صورتش یک پارچه از شیرین ترین خنده ها پوشیده شده است. با صدایی آهنگدار و بسیار دلکش که به طرز خندهآوری با آن وز وفق می گفت محققا من افتخار آشنایی با الکسی وانویچ را دارم. ولچانینوف که حیران مانده بود بالاخره توانست این جمله را به زبان بیاورد یعنی ممکن است که شما پاول پاولویچ ترسوتسکی باشید ما نه سال پیش در شهر ته با یکدیگر آشنا شدیم و اگر اجازه بدهید به خاطرتان بیاورم که دوست هم بودیم بله در این مطلب حرفی نیست اما حالا ساعت سه است و شما درست ده دقیقه به درور می رفتید و سعی می کردید بدانید آیا در منزل من کلون شده است یا نه؟ ملاقات کننده در حالی که ساعتش را از جیب بیرون می آورد و به طرز حزننگیزی متعجب شده بود فریاد کشید. ساعت سه؟ درست ساعت سه است؟ الکسی ایوانوویچ معذرت میخواهم. قبل از ورود باید به این امر اندیشیده باشم خیلی شرمندم. الان برخواهم گشت و برای گفتن حرفهایم دفعه دیگر خواهم آمد و اکنون ورچانینوو در حالی که دوباره بر خود مسلط شده بود گفت آه نه اگر باید مطالبی را اظهار کنید لطف بفرمایید و فورند بگویید خواهش میکنم از ای در بگذرید و به با اتاقم وارد شوید واضح است که شما قصد داشتید وارد خانه بشوید و این وقت شب فقط برای بازدید چفت و بست های در نیامده اید ولچانینوف آهسته و در این حال گیج بود حس می کرد که نمی تواند افکارش را متمرکز کند حتی از این موضوع شرمنده بود نه رمزی وجود داشت، نه خطری از همه جلوه هایی که این اشباه داشتند هیچ چیز برایش جز صورت گیج یک پاول پاولویچ باقی نمانده بود اما از طرفی دیگر برایش مشکل بود که باور کند همه این قضایا به همین سادگی باشد خیلی مبهم و با ناراحتی چیزی را پیشبینی بینی کرد وقتی که ملاقات کننده را در یک صندلی راحتی جا داد با بیحسلگی روی تخت خوابش در یک قدمی صندلی نشست کف دستهایش را روی زانوهایش قرار داد و با ناراحتی منتظر بود که این شخص به حرف بیاید. با وله او را ورانداز کرد و چیزهایی را به یاد میآورد. اما چیز عجیب این بود که آن دیگری سکوت کرده بود. مثل اینکه ابداً ملتفت نشده است که باید لطف کند و فورا صحبت کند. برعکس، به صاحبخانه خیره شده بود و مثل اینکه منتظر چیزی بود. مثل موشی که در تله موش گیر کرده باشد، شاید ترسیده بود و شاید دشواری مخصوصی حس می کرد که او را از گفتار باز می داشت. ولچانی نوف به حرف آمد. خیلی خوب، واضح هست که شما نه شبه هستید و نه رؤیا، ولی آیا به اینجا آمده اید که بازی اشباه را درآورید؟ حرف خودتان را بزنید دوست عزیز. ملاقات کننده تکانی خورد، خندید و با احتیاط شروع به صحبت کرد. اگر اشتباه نکرده باشم شما مخصوصا از این تعجب کردید که من در همچه ساعتی و در همچه موقعیت به خصوصی پیشتان آمدم گذشته را و چگونگی جدا شدن من را از یکدیگر به خاطر می حتی حالا هم به نظرم عجیب می آیند و از همه اینها گذشته من قصد نداشتم داخل شوم و اگر این امر واقع شده است کاملا تصادفی است چهار تسا‌دفی است. من شما را از پنجره دیدم که با نوک پا از خیابان میگذشتید دیدید. خب اگر اینطور است شما دیگر همه چیز را از خود من بهتر می دانید. اما من الان جز اینکه شما را عصبانی کنم کار دیگری نمی کنم. جریان از این قرار است. الان سخت است که من برای رسیدگی به کارهایم به این شهر آمدم. من پاول پاولویچ ترسوتسکی هستم. شما خودتان مرا رو شناختید. دارم اقدام میکنم که به اداره دیگری تغییر ماموریت بگیرم و پست بهتری به دست آوردم. اما مقصود اصلی همین نیست. اگر راستش را بخواهید بدانید موضوع اصلی از این قرار است که الان سه هفته است دارم در این شهر ول میگردم. و مثل اینکه جریان اصلاح کارهایم را دارم امدن کش میدهم و در حقیقت حتی اگر کارم اصلاح بشود امدن فراموش خواهم کرد که کارم درست شده است و در این حالت روحی که الان دارم پترزبورگ شما را تک نخواهم کرد سرگردانم مثل اینکه هدف خود را از دست دادم و حتی خوشحالم که آن را از دست دادم در این حالت روحی که من دارم ولچانینوف ابروها را در هم فشرد و کلامش را باری. چه حالت روحی؟ ملاقات کننده چشمان خود را به جانب او برگردانید. کلاهش را به سوی او دراز کرد و با مناعت تب نوار سیاه را نشان داد. لابد میبینید چه حالت روحی دارم؟ ولچانینوف بحت زده گاهی نوار سیاه را و گاهی صورت ملاقات کننده خود را مینگریست. ناگهان در یک لحظه صورتش سرخ شد و به طرز وحشتناکی منقلب کرد. یعنی ممکن است؟ ناتالیا واسیلی بله، او ناتالیا واسیلی افنا. در ماه مارس اخیر سل و تقریبا ناگهانی دو یا سه ماه پیش و حالا من ام همانطور که میبینید ملاقات کننده هنگامی که این مطالب را بر زبان میراند در حالی که راستی متأثر شده بود بازوهایش را از هم جدا کرد با دست چپ کلاهی را که نوار سیاه داشت گرفته بود و در حدود ده ای سر تاس خود را به زیر رفت این رفتار و این حرکت ناگهان به ولچانینوف حیات تازهی بخشید لبخندی مکارانه و تقریبا نیشدار بر روی لبانش نقش بست اما لحظهای بیش نپایید خبر مرگ این زن که مدتها پیش با او آشنا شده بود و به علت درازی زمان گذشته حالا توانسته بود فراموشش کند سبب شده بود که اکنون احساسی تأثرانگیز و نامنتظر به او دست دهد اولین کلماتی را که به نظرش آمد بریده بریده بر زبان راند یعنی ممکن است اما چرا فورا نیامدید و این موضوع را به من اطلاع ندادید؟ از همدردی شما تشکر می کنم، درک می کنم که چه حالی دارید و برای این همدردی ارزش قائلم و قدر آن را می دانم با وجود... با وجود چه؟ با وجود این همه سالهای جدایی... شما فورا در قصه من شرکت کردید و چنان دلسوزی و شفقتی نسبت به من ابراز کردید که طبیعتا حس می‌کنم باید به شما سپاسگزار باشم فقط همین بود که می‌خواستم به شما بگویم نه اینکه درباره رفقایم شک کنم در این شهر می توانم صمیمیترین دوستانم را بیابم مثلا این استپان میخائیلوویچ باگاووتوف اما بعد از آشنایی آشناییمان حتی می توانم بگویم بعد از همان دوستی دوستییمان که من همیشه قدرش را میدانم تا به حال 9 سال گذشته است آقای الکسی ایوانوویچ نه شما دیگر پیش ما برگشتید نه با هم کاغذی رد و بدل کردیم ملاقات کننده گفتارش را با لحنی آهنگدار و یک نواخت ادامه میداد در همه مدتی که حرف میزد چشمانش را به زمین دوخته بود و هرچند آنچه را که واقع میشد می, شد می دید. اما میزبانش حالا دیگر وقت این را پیدا کرده بود که اندکی افکارش را جماوری کند. با احساس غریبی که دائما شدید میشد به پاول پاولویچ گوش می‌داد و او را ورانداز می‌کرد و هنگامی که او از گفتار بازی ایستاد، موجی از افکار بسیار مختلف و کاملا نامنتظر مغزش را فرا گرفت و با حرارت فریاد کشید: آخر چرا تا کنون شما را نشناخته بودم؟ آیا ما دست کم پنج بار در خیابان به یکدیگر برخورد نکرده بودیم؟ بله یادم میآید شما همیشه سر راه من بودید دو بار حتی سه بار شاید یعنی شما همیشه سر راه من بوده ای، نه من ولچانی بلند شد و ناگهان خندهی صدادار و نامنتظر سرداد پاول پاولویچ یک لحظه کلامش را برید به او نگاه کرد اما فورا دنبال کلامش را گرفت اگر شما مرا به جان آوردید، اولا ممکن بود فراموش هم کرده باشید و ثانی من بعد از گرفتار شدن به مرض ابله آثاری از آن را روی صورتم دارم. ابله حقیقتا آبله بوده است. ولی چطور آبله گرفته اید؟ چطور آبله گرفته ام خیلی اتفاق می افتد. آلکسی ایوانوویچ گاهی به وسیله همه این قضایا چقدر حکیب است. ولی ادامه بدهید. ادامه بدهید دوست عز هرچند که شما را ملاقات کردم، صبر کنید ببینم. چرا گفتید چطور آبل گرفتم؟ من میخواستم مقصود خودم را معدبتر بیان کنم. ولی ادامه بدهید. ادامه بدهید. و بی این که بفهمد چرا، رفته رفته داشت خوشحال میشد. آن احساس غمانگیز اکنون جای خود را به احساس دیگری که کاملا با آن اختلاف داشت داده بود. با قدمهای تند در طول اتاق قدم میزد. هرچند که من حالا شما را ملاقات کرده و و هرچند هنگامی که به پترزبورگ می آمدم ازم جذب کرده بودم که شما را بیابم باز برایتان تکرار می کنم که الان در حالت روحی عجیبی به سر می برم و اخلاقا بعد از ماه مارس به قدری شکسته شده آه بله بعد از ماه مارس شکسته شده اید تعمر کنید سیگار نمی‌کشید. شما به خوبی می دانید که وقتی ناتالیا وسیلیف بود. بله، بله، اما بعد از ماه مارس خواهش میکنم سیگاری به من بدهید بفرمایید این سیگار بکشید و ادامه بدهید ادامه بدهید، شما را به طرز مخوفی ویلچانینوف در حالی که سیگار او را روشن میکرد دوباره روی تخت خواب نشست پاول پاولویچ مکس کرد اما شما هم در استراب عجیبی هستید سلامتید که سالت ندارید ویلچانینوف ناگهان متغیر شد. مرد شور سلامتی هم را ببرد. ادامه بدهید. ملاقات کننده که استراب میزبانش را میدید رفته رفته خوشنود و مطمئن می شد. دنباله سخن را گرفت. ولی چه چیز را ادامه بدهم؟ الکسی ایوانوویچ مرد شکسته ای را در نظر بگیرید؟ یعنی نه اینکه ظاهرا شکسته شده باشد بلکه باتنن و امغن مردی که بعد از 20 سال ازدواج زندگیش کاملا عوض شده باشد مردی که در خیابان های غبارآلود بی اینکه هدف مشخصی داشته باشد سرگردان است مثل اینکه در صحرایی گیر کرده باشد و در فراموشی خیشتن یک نوخوشی حس کنند بعد از این مقدم طبیعی است که در این مواقع در لحظاتی که خودم را فراموش کرده اگر به آشنایی یا دوست و رفیقی برخورد کنم همدن از نزدیک شدن به آن دوست و رفیق اجتناب می برسم. اما گاهی هم خاطره در من ایجاد می شود و در خودم میل برای دیدن آشنایان و دوستانم هر که می باشد حس می کنم. آشنایان و دوستان گذشته بسیار نزدیک و گذشتهی که برای ابد معف شده است و در این حال قلبم به قدری شدید میزند که نه تنها روزها بلکه در دل شب هم خودم را با هر خطری رو میکنم تا خود را در آغوش دوستی بیفت کرم. حتی اگر لازم باشد او را در ساعت سه بعد از نصف شب از خواب بیدار کنم من فقط در مورد ساعت اشتباه کرده بودم اما درباره انتخاب دوست به خطا نرفته بودم و در این لحظه سزای خود را حسابی دیدم در ای ساعت راستی گمان می کردم که هنوز نصف شب نشده. من در یک چنین حالت روحی به سر می برم. قم و خود را فرو می برم و از آن سرمست می شوم تازه، تنها غم و هم نیست. چیز دیگری است که اکنون مرادر هم می شکند. ولچانینوف با قیافهی گرفته گفت اما چه خوب خود را توجیح می کنید. و دوباره حالت بسیار جدی به خود گرفت. من خودم رو طور عجیبی توجیح می کنم راستی؟ شوخی نمی کنید؟ پاول پاولویچ که سخت متعجب شده بود گفت شوخی کردن؟ آن هم وقتی که می خواهم به شما اطلاع بدهم آخ خواهش می کنم در این مورد سکوت کنید ولچانینوف بلند شد و از نو در اتاق قدم زدن پرداخت. پنج دقیقه به این ترتیب گذشت ملاقات کننده میخواست بلند شود ولی ولچانیوف سرش فریاد کشید بنشینید و او فوراً فرمان بردارانه در سندریش فرو رفت ولچانیوف ناگهان در برابرش ایستاد و گفت اما شما چقدر تغییر کرده اید مثل اینکه این مطلب طرف را ناگهان تکان داد به طرز مخوفی تغییر کرده اید به طرز وحشتناکی تغییر کرده اید اصلا می شود گفت که آدم دیگری شده اید هیچ جایی تعجب نیست نه سال گذشته است نه نه نه صحبت از سالهای گذشته نیست شما از لحاظ جسمانی هیچ تغییر نکرده اید چیز دیگری است؟ شاید هم به علت این نه سال است یا بعد از ماه مارس پاول بد بدزاتانه خنده مسخره آمیزی کرد <تصفيق> شما حتما فکر خنده آوری دارید اما اگر من جرأت کنم راستی، این تغییر در چیست؟ بسیار خوب، پیش از اینها یک پاول پاولویچه موقر با ادب، یک پاول پاولویچه عاقل وجود داشت، ولی همان شخص حالا آدم هرزه و فاسد و سبکی شده است به آن درجه از بی خودی رسیده بود که در آن حالت حتی آدمهایی که مالک نفس خود هستند گاهی زبان خودشان را توانند نگاه دارند پاول پاولویچ مثل اینکه لذت می برد خندهی مسخرامی کرد و گفت آدم هرزه و فاسد؟ اینطور درک کرده اید؟ و کاملا بیشور؟ بیاقل؟ بر شیطان لعنت، نه آقل حالا باید بگویم که بسیار زیرک و باهوش ولیچانی از خود پرسید من گستاخم، اما این آدم پست بیشتر از من جسارت دارد مقصودش چیست ملاقات کننده که بسیار متأثر شده بود و در سندریش به جنب و جوش افتاده بود فریاد براورد آه آقای عزیزم آه الکسی و گرامم این وزن ما را به کجا خواهد کشاند؟ ما که همین الان به این دنیای باشکوه قدم نگذارده ایم. ما دو دوست بسیار قدیمی دو دوست بسیار سمیمی هستیم و حالا با کمال سمیمیت در یک جا جمع شده این، تا رشته این دوستی بیشاعبه را که رابط ما بود و آن مرحومه قیمتی ترین حلقه آن بود مستحکم سازیم هیجانش به اندازه شدید بود که از نو سرش را به زیر و با کلاهش صورت خود را پوشانید ولچانینوف با نفرت و استراب او را نگاه می‌کرد. ناگهان اندیشی؟ یعنی این آدم، آدم مسخری است؟ ولی نه، نه، مست هم نیست، شاید قبلن بوده، صورتش برافروخته است، اگر مست هم باشد مسئله فرق نمی کند، چه چیز را می خواهد ماهرانه به من تلقین کند، این آدم پست چه می خواهد؟ پاول پاولویچ آهسته آهسته کلاهش را از خود دور کرد و بیش از پیش خود را به دست خاطراتش سپرد و فریاد کشید به یادتان هست گردش های من را در کوهستان؟ شبنشینی من را و مجالس رقص و قمار خودمانی من را در منزل آری جناب میهمان نواز سمیون سمیون و به خاطر می‌آورید که شبها سه نفری مطالعه می و اولین برخوردمان را به یاد دارید که شما اول صبح پیش ما آمده بودید و می‌خواستید درباره موضوعی کس به اطلاع کنید شما حتی داشتید عصبانی شدید اما ناگهان ناتالیا واسیلیوونا وارد شد و ده دقیقه نگذشت که شما سمیمی ترین دوست خانواده ما شدید و این دوستی یک سال تمام ادامه پیدا کرد درست مثل نمایشنامه خانم ولایتی آقای تورگنیف ولچانینوف چشمان خود را به زیر بود و آهسته راه رفت با انزجار و از روی بی‌هاسلگی اما دقیق به وی گوش میداد در حالی که کمی آشفته شده بود کلامش را قطع کرد. من هرگز به فکر نمایشنامهی خانم ولایتی نیفتادم و قبل از این هرگز شما را با این ترس حرف زدن که بیشتر به زوزه حیوانات شبیه است و کاملا آریتیست ندیدم. چرا اینطور شده اید؟ پاول پاولویچ آهست جواب داد. راستش این است که پیش از اینها من کمتر حرف می زدم. یعنی ساکت تر بودم. شما میدانید پیش از اینها من ترجیح میدادم هنگامی که آن مرحوم صحبت می کرد به او گوش بدهم. یادتان هست که چگونه حرف می زد؟ با چه فهم و شعوری مخصوصاً درباره نمایش نمای خانم بلایتی و پهلوان آن استوپاندیو در این مورد هم حق داشتی. بعدها هنگام فرصت من و آن مرحوم از شما و اولین برخوردمان بارها یاد میکردیم و درباره این نمایش نام صحبت می کردیم زیرا راستش را بخواهید در این میان شباهتی موجود بود و درست در مورد استوپاندیو ولچانینوف که کاملا از اسم استوپاندیو از جا در رفته بود و این اسم در او خاطره های آشفته ای را زنده میکرد پایش را به زمین کوبید و فریاد کشید کدام استوپاندیف مردشورتان را ببرد؟ پاول پاولویچ آهست زمزمه کرد استوپاندیف شوهر نمایشنامه خانوم ولایتی است قهرمان صحنه است ولی این موضوع به یک رشته از زیباترین و با ترین خاطر های ما بستگی دارد یعنی موقع عظیمت شما وقتی که استپا میخایلویچ با گوتوف با دوستی خیش درست مانند شما ولی فقط پنج سال ما را سرفراز کرد با گوتوف کیست؟ کدام باگا ولچانینوف ناگهان ایستاد و سر جای خیش میخکوب شد. باگا اوتوف. همان استپان میخایلوویچ که ما را به دوستی خودش سرفراز کرد. درست یک سال بعد از شما و اینن مثل شما. ولچانینوف بالاخره فهمید و فریاد کشید. آه خدای من. آها میدانم. باگا اوتوف. خدمت اداریش او را به شهر شما کشانیده بود. پاول پاولویچ با شور و التهابی حقیقی فریاد کشید بله بله او از بستگان حاکم بود مردی جوان و بسیار ظریف و از بهترین اجتماعات پترزبورگ بود بله بله پس مرا چه می شود؟ آنگاه نیز پاول پاولویچ با همان شور این اعتراف را که با بی احتیاطی ادا شده بود از دهان میزبانش قاپید و گفت و او نیز بله نیز و او نیز در همان اوقات ما نمایش نامه خانم ولایتی را در منزل مهمان نواز بزرگ حالی جناب سمیون سمیونویچ بازی می کردیم. استپان میخائیلوویچ رول کونت را داشت و من رول شوهر و آن مرحومه رول خانم ولایتی را بازی میکرد. اما به واسطه اصرار آن مرحوم این رول را از من گرفتند. بنابراین من رول شوهر را بازی نکردم. مثل این کلاغتان را نداشتم. ولچنینوف با بی و تقریبا لرزان از خشم و قذف فریاد کشید: بر شیطان لعنت! شما چه وچه اشتراکی با استوپاندیف داری؟ شما قبل از هر چیز پاول پاولویچ ترسوتسکی هستید، نه استوپاندیف. اما بگذارید ببینم، باگا اینجا در پترزبورگ هست. من خودم او را در پاییز دیدم. برای چه نمیروید او را هم ملاقات کنید؟" الان سه هفته است که هر روز خدا با آنجا می روهم. مرا نمی پذیرند مریض است. نمی تواند مرا بپذیرند و اینطور تصور کنید که من از منبع موسقی اطلاع دارم که او راستی هم مریض است. یک دوست شش ساله آه آلکسی ایوانویچ این را به شما می گویم تکرار هم می کنم در این حالتی که من دارم گاهی می خواهم صد زرع زیر زمین بروم راستی این را می خواهم و در لحظات دیگر می خواهم خودم را در آغوش یکی از آشنایان قدیم بیاف کرم. و به عبارت دیگر در آغوش یکی از آنهایی که در گذشتم شرکت داشتند. آنها فقط برای اینکه با هم گریه کنیم. برای هیچ چیز دیگر نیست. فقط برای گریه کردن. ورچانینوف سب و فریاد کشید. خب آیا برای امروز دیگر کافی نیست؟ پاول پاولویچ فوراً بلند شد. کافیست، بسیارم کافیست، ساعت چهار است و من مخصوصاً با خودپسندی خودم شما را ناراحت کردم گوش کنید، من خودم بیشک پیش شما خواهم آمد و آن وقت امیدوارم، اما راستش را بگویید آیا شما امروز مست نیستید؟ مست؟ ابداً، وقتی که به اینجا می آمدید یا قبل از آن چیزی ننوشیدید؟ اید؟ آلکسی وانوویج. مطمئنا تب دارید من فردا قبل از ظهر خواهم آمد پاول پاولویچ که بسیار راضی به نظر میآمد با پافشاری کلامش را برید الان مدتی است که می بینم شما دارید هزیان می گویید من راستی از ناشیگری خودم شرمنده ام اما حالا میروم میروم و شما بخوابید و سعی کنید خوابتان ببرم ولچانینوف در حالی که پاول پاولویچ را گرفته و نگاه داشته بود فریاد کشید اما نگفتید کجا منزل دارید؟ نگفتم در هتل پوکروفسکی این هتل پوکروفسکی دیگر کجاست؟ درست نزدیک کلیسای پوکروف اسم کوچه و شما رشت را فراموش کردم اما درست نزدیک کلیساست پیدا خواهم کرد با میل منتظر شما هستم میزبان عزیزم اکنون در پله ها بود ویلچانینوف دوباره فریاد کشید. صبر کنید. تغییر جا نخواهید داد؟ پاول پاولویچ که روی پله سومی بود در حالی که چشمان خود را خیره کرده بود و خنده ای بر لب داشت به طرف او برگشت. تغییر جا دادن یعنی چه؟ به جای پاسخ ویلچانینوف با سر و صدا در را بست. با دقت کلید را چرخانید و کلون را انداخت. وقتی که به اتاقش برگشت مثل اینکه شرافتش لکهدار شده باشد توفی به زمین انداخت پنج دقیقه بی حرکت ایستاده باقی ماند بعد حتی به اینکه لباسش را درآورد خود را بر روی تخت خواب پرد کرد و فورا به خواب رفت روی میز شم را که فراموش کرده بود خاموش کند آهسته آهسته میزو